تا دیدار آخر شاید رسید از راه بردای یه روزه بهتر بلک هوادارت چون بلدی بخندی با چشم دل ببازید با اش دل ببندید اجوا که دلب سبزه پیچیه توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا تجواه که قلب سبز پیشیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا سلام علیکم حال و احوالتون چطوره؟ من فرشید و منافی رادیو را پس فردا بارمه. خوبیم خوشیم سلامتیم چه خبرها خوش میگذره ما خوبیم سعید و مرسام هستن و از صبح رفتن پرای کاشنگ رو زدن چرخیدن خوش گذاروندن بعد از آره اومدن استویو مشغول بودن و امروز هم ما رو توی اجرای برنامه همراهی میکنم بچه ها خوبیم؟ بونو شما شواب چطوری؟ خوش گذشت برات؟ آره خیلی خوب بود خیلی سرد بود ولی یخ زدین خیلی سرد سرد نبوده خیلی سرد من بود. دیدم یه شال گردنای جفتتون داشتین این پتو گل بافت بود کیچو بودین دور گردن ولی تون. بازم کافی ن عادت <تصفح> میکنین عادت می‌کنیم خب این هفته هم اونجوری که مستعذر هستین داریم در مورد مدرنیسم صحبت میکنیم امروز میخوایم بریم سراغ تفریحات و خوشگذرانی‌های مدرن تا ببینیم این مدرنیته چه برسر اوقات فراغت ما آورده پس همین اول برنامه سلام مخصوص مخلص می‌کنیم خدمت همه اون عزیزانی که هنوز در برابر بازی‌ها و تفریحات مدرن مقاومت می‌کنن و همچنان بچه‌هاشون رو با جدیت تشویق می‌کنن که به جای کالاویدیوتی و نیت فور اسپید برن تو کوچه الگدلک و افسنگ بازی آقا خانم خودتو خسته نکن نمی‌کنن که یه سلام مخصوصی هم عرض بکنیم خدمت همه دلابران خستگی نپذیر عرصه کندی کرش و نمیدونم کلش آف کلنز و واسه نمیدونم درست دارم میگن تو مایا که مرحله ششصد و چندوم هم رد کردن دارم کم کم به تهش نزدیک میشن البته اگه تهی داشته باشه اصولا خسته نباشید همه برو بریم هم اومد هم بینویسن. هم اجرا کنند، هم کمک کنن خیلی بال با بود سیبیلا رو میگم کمتر از تو نباشن بیشتر از تو هم نیستن کم هستن قیالت راحت فرشید بارو خوش باش فقط سیبیلاشونو نزنن رو نزننا والله منم سیویل داشته باشن نشوسن چه فرقی برای شما داره شما که نرزنشاسی پای رادیو من بعد هر روز تو چش چش تو چش کنه چش تو سیویل باش این دوستان باشه والله من بارها گفتم محیط کار جای گذاشتن نیست من نفهمم چرا اینا سیویل میزنن بر بچا آقا جفتشون با هم همزمان هماهنگ شده حالا بهتون ما کاری نداریم بالاخره خودشون میدونن چیکار بکنن دیگه ببینیم چی میشه خب بریم سراغ یادم رفت مقاظم صرغ چی به موزیک برو حالا رو وقاتی کرد آقایون خانمها دختر خانم‌ها و پسرا بقد بفرمایید یک مطلبی رو من بگم هر چی فیلم سامورایی تا به امروز به عنوان نمیدونم شمشیرزن افسانه ای شمشیرزن یک دست نیم دست دو دست هر چی نابینا اینا دیدین فراموش کنید به این روایت از شیوه شمشیرزنی حضرت علی گوش بدین لطفاً امام باقر علیه السلام قاعده جد من این بود اونها قدشون خیلی بلند بود رو اسب از وز کمر می‌زدن اونها معتدل بودن از وسط نصفشون ممکن همین دو تا این بسته بندی بشه که تکلیفم روشن بشه اندازم دقیق بود انگار شاغول گذاشتم و تراز گذاشتم بعد دقت کردن چی شد یعنی به گفته ایشون از موقع جنگ نگاه میکردن به دشمن ای طرف قد بلند بود از کمر میزدن نصف نمی‌کردن ای قدش معمولی یا به قول آج آقا آقا معتدل بود با زلفقار از بالا میزدن تو فرق سرش مثل خیار از وسط نصفش میکردن دقیقاً می‌زدن یعنی بازم به گفته این آقا شمشیر در عین حال که شمشیر بود خطکش هم بوده یعنی بعد از ضربه اگه دو تا رو میذاشتم بغل هم یه میلی‌متر ور, ور نبوده حالا گوش کنین بقیه‌اش هم متوجه می‌شید یعنی اصب صوا رو بیرون دوست و دشمن نوشته صورت بسته از میومد یه اد در از کمر می‌زد یا رو نصف می‌کرد بعدن بعضی قلمایی که بودن اونجا گفتن شعار رفتن آقا این چه کسی بود ندیدیمش دیگه گوی جنازه ها رو برید بکشید تا بگیم کی بوده نکشتی آقا قد از وسط از کمر میزد اونم معتدل بودن از بس. دو طرفشونو بکشید. دویشت کشیدند طرف راست و چپ بالا و بالا پایین مونه نمیزنه یه مسقل به اندازه زده شده. وزنا یکی گفتن زاک مولانا امیرالمومنین سلام الله علیه. سلام الله علی محمد و آله و کبارکلا دستگاه کاتر لیزری هم نمیتونه با این دقیق بزن خدا وکیلی. بعد حالا آقا چه نیازی بوده انقدر دقیق باشه ضربه ها؟ من اینو موندم تو چرا؟ خب نه چرا واقعا؟ ایتی تیکی ها مساوی در نمیمدن طرف نمیمورده بعد مثلا چی قراره اونی که مثلا پای منبر نشسته قراره چی یاد بگیره این هم یک مطلبیه یاد بگیره مثلا خاص کسی رو نست کنه درست نست کنه یا اینکه که به این نجه برسه شمشیر حضرت مثلا نشونگیر لیزری داشته یا چی و یه چیزی هم من متوجه نشدم گفتم قد بلندار و افقی نسمی کردن دشمنان متدل متوسط و قدر و عمودی بعد قد چی؟ این هم جاداش بشه اشارهی بشه حالا بعدن انشاءالله توی منبرهای بعدی اطمالا به قدکوتهای یه دونه افقی یه عمودی میزدن چارغاچشون میکردن دستشون در نکنیم بستا نباشیم oh, yes. oh, سلام فرشید جان خوبی؟ سلام علیکم داریم یخم بله ما رو بگیم اونجا داریم بله. عرق میریزی 32 درجه توی شهر داوا و توی فیلیپین واقعا از گرما کلافه شدیم ای کاش تو من جاتو تو با هم دیگر بس میکردیم خامدام از فیلیپین والله هم یه جوری هم میگه داریم میپذیم عرق می‌ریزیم فلان انگار مثلا 45 درجه والله 32 درجه که دیگه حالا دیگه پنج درجه از دمای طبیعی بدن هم پایین‌تره علکی جب میدن فقط می‌خوان دل ما رو بسوزونن اه اما امشب و فردا همونجور که دیروزم هم گفتم پدیده خاصی نداریم البته به جز آلودگی هوا توی شهرهای بزرگ اینه که اگه ساکنه چون شهرهایی هستین سعی کنین این یکی دو روزه رو کمتر نفس بکشین یا لاقل نفس عمیق نکشین همجوری فقط از چه چه سر کنی نفس بکشین فقط زنده بمونین انشالله از سه از مقدار آلودگی هوا هم کم بشه و امشب ارومیه و بیرجند با یک درجه زیر صفر سردترین نقاط ایران هستن البته ما فقط داریم در مورد مراکز ها حرف میزنیم ما چه بحث دمای هوا توی مثلا خلخال و خوی و میانه حتی کمتر هم باشه حالا شادم نشی چیزی که هست ما الان توی مراکز ها وضعیت دمای شهرها رو با هم مقایسه می‌کنیم خدمتتون میگیم مثلا نه هر روزا بعضی روزا شما هم از وضعیت آب و هوای شهرتون بهمون بگین دیگه خوشحال میشیم. مانسه رو من قدیمی به برنامه هستم تمام 937 برنامه رو کردم یه چیزم بگم الان هوای گز 22 درجه سانتیگراد بالای صفر با یه آفتاب ملایم دلت بسوزه محشنم ازی است خیلی متشکرم کلا یعنی تمام توانتون رو می‌ذارید شما که از آب و هوای خوبه شهرتون استفاده کنید. برای اینکه دل ما رو بسوزونین دیگه همین فقط خب اه... سعید و محسا یه کاری انجام دادن میخوام قبلش یه گپی توضیح خب موضوع برامه این هفته مدرنیسمه، مدرنیسم ایرانیه بچه ها اومدن خب یه خلاقیتی به خرش دادن یه کار قشنگی کردن یه کار موسیقیه بذار خودشون توضیح دادن چیه؟ این کار چیه الان؟ این چیه الان؟ والا ما ساز و جا گذاشتیم خونه که چیکار کنیم ساز نداریم؟ محبی... با دهن همه صدا ها رو زدیم یه اسمی داره اینکه با دهن میگن چی بهش؟ بهش میگن آکاپللا, آکاپللا. آره حتی ششنمنده جالب باشه براشون یه فیلمی هم در هالیوود ساخته شد که دوتا قسمت بود بنامی پیچ پرفکت. یک و دو درباره یه گروه آکاپللا دخترها بود که موسیقی رو با دهن اجرا میکنن ما چون برنامه‌ای هم که دیروز کار کردیم میخورد خورده راجع موسیقی بود جفته اونم به موسیقی علاقه‌مندیم گفتیم یه کار مدرن موسیقی انجام بدیم کار مدرن موسیقی انجام دادن این صدایی که الان میشنیدید صدای مرسا بود این صدایی که الان می‌شنوید یه باری یه حرف بزنم بشنوام اساسا تشخیص نمیدن کدوم کی به کیه سعید کی مرسا کیه این صدای سعیده البته جالب که با مرسا خیلی مچ شدیم یعنی در کنار هم تونستیم ویدئو رو روی هم بذاریم و خوشبختانه تا الان همه چی خیلی خیلی خوب پیشرفته خیلی مچ بودن بچه ها با همین منم هم بعد اشاره بکنم بهش از دیروز واقعا مهررس و سعید مه... کنار همدیگه و با استکاک کاری زیاد و خیلی شدید همین جوری خلاقانه و همجوری اه... قول معروف ایده ها و خلاقیت ها بود که می بیرون و این هم یکی از اون کارهایی بود که امروز انجام دادن حرف دیگه داریم بشنوییم یا نه نه بشنوییم با کاپل های و سعید از فرد و یاش برو بری گلیاره که می پرسی لبه پنجره یا زیر کرسی آخه والی گیر نده سر جدد بابا آخه باز داری می پرسی گلی دماغعملیت منو گشته پروز اون لباس چه درسته؟ گلی این خوشگ یا طبیعییه آخه این همون گلی قدیمیه مگه قدیمما گلی توپل نبود توی شهر خوشنشیم صبح گل چی شد یه هوش مانکن شدی آنجا شدی می شدی خفن شدی؟ قلوم به داشتی حالا میگی سیسپک نداری مشتی دیگه قیافت یادم نمیاد شدی شبی بقیه خیلی زیاد آخه چشاد هر روز یه رنگه سور مگه قشنگه گلی کاشم اونجوری میموندی راست چند سن کتاب نخوندی گلی چی بود اصن؟ گلی چیه الان؟ آخرش گولی بود گولی چیه قضیه گلی دو دختر توه نه دوست توه شخصیتی که روز اول ساخته شد و نگارش داشتیم یعنی از برنامه دیروز آره یعنی اول گول چهره و گول چهره و بله خیلی خوب دمتون گرم دستتون درد نکنه البته یه گولی باشه خیلی خوبه ها ولی کلا چون نیست ما همین یه چهره درست کردی؟ خیلی هم حالی، دستون دردن کنه دمتون گرد آقا خلاقیت داره منفجر میشه اصلا یه وضیعتیه بریم ببینیم که آقا دشتی کجاست ماشین مشتی ممدلی هر زنوبی محتلی ماشین مشتی ممدلی نه بوغ داره نه <تصفيق> یعنی چی؟ هر کی بخواد بیاد بره تو مجلس تو دولت تو چه بدونه اصلا چی رو سر ما بشینه بشینه منطقه چی؟ مهم اینه که این گرونی برونی رو ما درست کنه دیگه آخره یه بود شدیم ما از بس هی شب خوابیدیم صبح شدیم دیدیم همه چی گرون شده چه بازه شما با؟ جونه؟ نه بابا همه نمینن دیگه دوره این تی یارو احمدی نجاد که بدتر بود داشته الان همه میگن این بدبختی هایی که داریم تی زیر سرم این احمدی نجاده والا به خدا تیزی که ما دیدیم اینه که هرکی رفون مالا تی آدش مردم بهش رعیمه دادن نداشت دنبال تی سیر کردن خودش رو دوروبریا شدن همه شد والا زونم؟ باز نگه احمدی نجاد تالم بود بابا الان چه میدونم میگن 600 تا پرونده واسه همین دورووری های همین یارو که زون همین الانا یعنی آخه کاره نیست چدا نفهم یعنی ملت میرن چی دمه خونه عمدی نامه پامه میدن زونه من چی میشه و همون موقع همین که این زمور بود ارزا 500 کیلو نامه میگرفتن بده اتفاقی نمیفتاد داشته من که والله. بم من خودم تی سه بار نامه دادم داداش. نا بعد 70 بار زنگ زدم رفتن اومدن چی؟ یه نامه دادم که یه وام 500 ملی 500 میلیونی چی؟ یه <تصفيق> وام 500 هزار تومانی به وم دادند داداش. اونم رفتیم چی؟ بانک. یورو بانکیه که مونده بود بگه بیا خونا تو واسه 500 تومن وام یورو بزاد. والله نامه رو کو بدم تو صورت شما دادم میرم. از اینا داش من چی؟ او نمیشه. زو ما. یعنی الان هم نامه وام میده؟ چقدری؟ نامه وام دو میلیونی میده؟ مرگ من ایوه بدم هم نیست ها بریم یه تلاشی بکنیم دو میلیون هم تی؟ دو میلیونه دیگه ها شادس خونه شو داری؟ نارمکشو میدونم ها کتای نارمک؟ میدون افتاد و دو بومبسته چی بود؟ هدایت ایوه دو همه دیگه داشت آره ایدو رفت و دودو نارمک کومت سه دوید آره آشت حافظه تیم ایدو ساعت کار بکنه آشتی بکردی میرم آلا فردای سنگی منازم نیگه آلا با قسمت سقم افتاده داریم آ آلا خدا نگون نگون نمیان نگون نگون نمیان امیدو پر بادن دیگه س اما بریم سراغ راژیو پسورده شماره 939 امروز یک شنبه هشتم ماه 1394 میره سراغ خوشگذرانی‌های های مدرن بهانه‌های های کوچک و بزرگ برای خوشبختی های مدرن بیانی یه شماره 939 بدانید و آگاه باشید که هرچند کسی منکر جذابیت های, های مدرن نیست لیکن اینطور نباشد که ما به بحانه خوشگذرانی مدرن بر هرچه خوشگذرانی قدیمی و سنتی هست پشت پا بزنیم هرچند که هرکاری کنیم برای سفر کردن هواپیما را به شطور برای غذا خوردن پیتزا را به نرگسی و برای وقت گذراندن سینمای شانصد بودی را به قهوه خانه ترجیح می دهیم و ما در هر صورت از به زور مدرن شدگانیم امزاو خودشان برای مظاهر زندگی مدرن دلشان غش رفته های حالا وقت وقتا برای جذابیت های زندگی های قدیمی هم دلتنگ به شوهای رادیو پس بچه که بودیم یه بار یه کنسرت نواد ویدئویه کنسرت مایکل جکسون گرفته بودیم اون موقع هم که دیگه خانوادگی همه نواد رو میزنیم ویدئو میشستیم و دیدم یه بابا بزرگم بابا جون از در اتاق اومد تو و یه نگاهی کرد و گفت بابا این کیه دیگه این چرا اینجوریه چرا لباسش تنگه چرا حجم رو انداخته بدون؟ چرا همیشه دستش به خودشه خلاصه این بوده برخورد و مواجه باواجون من با پدیدهی برسم مایکل جکسون ولی باواجون نیستی الان ببینی که مایکل جکسون در مقابل الانی ها نجابت و پاکت آمانیه معیم هستم از تهران کلی متشکرم مریم آره اون اول آقا با... با... باسه همه مثل که سوال بودین انگار یه چیزی شله مثل یه چیزی داره میفته انگار به بدنش دست نگران مثلا چیزی بیفته ولی بعد دیگه کم کم عادت کردیم دیگه بابا هم خب بنده خدا دیگه اون موقع حق داشته دیگه والا بعد بگم همین چند وقت دیگه یه خورده دیگه بگذره این کلیپای ناجور نیکی مینانج این این حرکت‌های اخیر خانم جیلو و اینا برامون عادی میشه اصلا نگران اما خانم آقاین دختر خانم آقای به سرها یکی از جاهایی که مدرنیته خیلی زندگی ما ایرانی ها رو تحت تاثیر قرار داده حوضی تفریحات و اوقات فراغت و عشق و حال ماست که حالا موضوع امروز هم هست الان نظر سنجی کنن آمار بگیرن مثلا 5 تا از محبوب ترین تفریحات ایرانی ها ایناست فیسبوک، تلگرام، وایبر، اینستاگرام، فاطمه گل که تموم شد الان دیگه جدید. حالا 30 سال پیش این نظر سنجی برگزار شده بود محبوب ترین تفریحات یه چیزی بود توی مایه های مثلا کنار دریا پیکنیک، دید و بازدید سفر کتاب خوندن حالا دیگه شما تصور کن داریم به کجا میریم ما توی اینترنت و های مجازی انواع و اقسام گروه‌ها هم برای انواع و اقسام تفریحات ماشاءالله به وجود اومده دیگه ملت لازم نیست پاشم برن مثلا این ور ور از تفریحات سالم و ساده توی گروهای مثل اگه میخوای بخندی بیای تو بیا تو ای میخوای بخندی بیا تو ها مثلا تو اینترنت تا تفریحات آنچنانی تو گروهای مثل فقط با جنبها بیان تو اینجوریه دیگه مردم اوقات فراغتشون اینجوری پر میکنن خلاصه بعد حتی الان ماهیت زندگی مدرن یه جوری تغییر کرده دیگه مرزهای بین اوقات فراغت و غیر فراغت هم چندان مشخص نیست یعنی نگاه کنی به زندگی ایرانی ها میبینی کلن در اوقات فراغت به سر میبرن مگه اینکه یه مثلا یه کاری چیزی مثلا پیش بیاد مجبور یه لحظه اوقات فراغتشون رو پاوز کنن برن کار رو انجام بدن برگردن توی اداره و توی کارخونه بود توی مغازم نداره هر جا رو ببینیم ملت سرشون تو موبایل و کامپیوتر همش در حال از این گروه به اون گروه رفتنن و کاری هم اون وسط‌ها ای انجام میشه در حکم یک تنفس کوچیک منه دو فراغت بزرگه دیگه این نفس هم نمی‌شه همچین فراغت داشت که بالاخره لازمه دیگه وسطش کاری لازم استراحتی به چشم ها و ها بدی و مشتری رو رابندازی و جواب ارباب رو, رو بدی از این کارا حالا ببینین آینده وقتی بریم آینده چی اتفاقی میفته زمان سال 1594 هجری شمسی مکان پارکی در آینده آخه چه هوایی شده امروز بی سی جان آره دیگه خوب هواییه راستی گجت زاده جان بچه چطوره خوبه؟ اونم بد نیست دیگه چهار سالشه و کم کم وقتشه پلکاشو تاتی تاتی تی تی آخه حالا باید کلی پول بدی براش از با بازی نوترونی بخریه <تصفح> چه فایده؟ این دستگاه برای سلامتی بچه ها مزرد پدر بزرگم تعریف میکرد غریما بچه های دستگاهی داشتن به اسم ایکس باکس. بچه مجبور بود برای بازی انگوشتاشو تکن بده جدی میگه گجت شده یعنی با انگشت بازی میکردن؟ آره دیگه پیسی پورجان مثلان همه بازی ها چشمی پلکی نبود که یادش به خیل بازی های خودمون که با حرکت سرگردن بود از این خبران نبود که آره واقع دوست میگن یه بازی جدیدی اومده که حتی چشمت هم نمیخواد تکن بدید لابد از اینا که بهش فکر می و میری جلو. آره دیگه و چه کلاه مخصوصش رو میذاره و با مغزش بازی میکنه. اینطور پیش بره نسل بعدی کلن میشه یتی که دمبهخش گفتی دمه یاد آب افتادم. تو مگه آبگووش خوردیناقلاب؟ نه ولی بابام یه بار خورده بود برام تعریف کرد. خوش با حالش گجت زده زدهجان یه چیزی به بگم باورت نمیشه. توی که از تاریخی می که در دوران پیشا آکس باکسی. بچه ها برای بازی کردن دنبال هم دیگه می, می دویدن یعنی چی پیسی پورجا؟ یعنی مثل ما می خزیدن ولی تونتر؟ نه بابا روی دوتا زائده انتهایی بدن که اون زمون بهش پا می حرکت می‌کرد. خیلی عجیبه مگه چنین چیزی ممکنه آخه؟ نمیدونم والا به بریم زیاد حرف زدم از حلات زبونم گرفت بخذیم این یه آب اتمگیریه یه آب سنگینی چیزی بزنیم آره خوب گفتی منم خیلی تشتنه بخذیم اتفاقا جای این آب میوه گیری نوترونی ها سانتریفیوز گذاشته بریم ببینیم با آب میوه سانتریفیوزی چه مزیدیه آرون بخذ ازیاد نشیم یا استیف جان آخ آخ آخ آخ بازیم مسیر خذیدن و سیغلی نکردن نگران نباشتم انتخابات. لا ولی فکرم پرسه روی باد میدم به ملت که راحت تر بگذره فخر تو سرشون کپسولش بعد انتخابات کار میفته بخاز گور نزن انرژیتو نگه دارن میخازم دیگه بابات آخرم سنام دیگه چی با تو اشغام میگه نمیدونم چی میشم از شما خواستیم بهمون بگین نظرتون در مورد مدرن شدن جامعه مثل جامعه خودمون چی از تجربیات خودتون و دوروبریتون در مواجهه با پدیده های مدرن مروون بگین حالا میخواد تکنولوژی باشه مثل گوشی دست گرفتن و چت کردن مادر بزرگ به در بزرگا یا فرهنگی و فکری باشه یا هر چیز دیگه ضمناً ازتون خواستیم بگین تاثیر دنیای مدرن در نهایت برای خودتون و اطرافیانتون و جامعهتون مثبت بوده یا منفی بوده بگین نظرتون در مورد مدرن شدن ایران و جامعه خودمون چیه؟ منتظر جوابتون هستیم بفهمیم بالاخرین مدرنیته به درد جامعه سنتی ایران خورده یا برامون صرفن شده غوز بالا غوز دیگه نوبت شما خودتون می‌دونیم هر کار می‌خوام بکنم ارتباطی رادیو فردا ایمیل فردا و های دو و برای ها الان. من معذرت میخوام دوباره و دو صف چهارصد و تلفن ها دو صف چهارصد دو یازده بیست و چهارصد دو صف یازده دو میخوام دو صف و بیست دیوستو وایبر واتساپ تلگرام 20420 77 و یادتون نره که به تلگرام برنامه هم جوین بشید. کانال تلگرامی ما و در فیسبوک، گوگل پلاس، اینستاگرام، ساند سانکلاود دیگه کجا؟ همین دیگه دیگه جای دیگه نداریم دیگه. خیلی موچک اما دیروز دکتر سعید مدنی که استاد جامعه شناسی هستن و دکتر رزوی فقیه که ایشون هم استاد دانشگاه هستن و امروز به ناحق توی زندانن مورد حمله ارازل و زندان قرار میگیرن با چاقو گردن و صورتشون زخمی میشه ظاهرا اتاقای بازجویی و سلولای انفرادی و انتقال زندانی های سیاسی و های تحصیل کرده و روشن به زندان عادی و نگهداریشون در د ارازل و باش کم بوده حالا مجوز اینجور کارها هم توی زندانها صادر شده کارهایی که در نهایت به اسم چند شرور نوشته میشه اما کیه که پشت این به اشرار دستوی اون شرور بزرگتر رو نبینه متاسفانه کاری نمیشه که جز تأصف خوردن و امیدوار بودن که فردامون بهتر از امروز باشه دیگه قابل توجه کلیه اشرار، قمه و زورگیران گرامی مستقر در زندان رجای شهر کرج مدیریت زندان رجای شهر در جهت ارتقاء سطح ضرب و شتم و قلع و قمع زندانیان سیاسی برگزار می کند. این زندان از کلیه زندانیان جرائم خشن و اعدامی گرامی برای ضرب و شتم، نسخ کشی و خط انداختن روی سر و صورت زندانیان سیاسی دعوت به همکابی می حقوق ثابت، دستخش، پورسانت، همراه با جابی خواب و سه بعد غذای گرد. امکان استفاده از مرخصی ماهیامنه به صورت نامحدود و امکان برخورداری از عفو مقام معظم رهبری به منافسبت های خاص. خیلی ابزار کار از قبیل پنج بوکس، تیزی، قمه و صابیر ادواب تهاجمی سرد و نیمه گرم پرداخت دیه مظلوبام سیابسی در صورت فوت و یا نقص عضو از صندوق دولت و استخدام تضمینی در سازمان های رزمی وسیج و سپاه ولی امر بعد از آزادی بدون در نظر گرفتن سوء پیشینه چی کار کنیم خدا نه پونی داریم نه کاری نه شاغلیم محصب تا چیزی رو بردار بریم زورگیری زورگیری؟ داشت ما سابقه داریم میگیرن اعدام میکنه میکنن نه بابا اعدام چیه؟ جدیدن میفرستن رجاوی شهر استاد دانشگاه خط خطی میکنیم هم بچه ها میشیم من؟ هره بابا نشنیدیم اگه تازه بعد از آزادی هم مد و دییه زندان تو ببری سپاه استخدام میکنه ایور پچون نشستی بعدا تیزی رو برین که خف ک. زندان جای شهر کره در خدمت ااشراور و غمکش آمگرامی. یموا یه فرصت گل برای ایران فری بر غریب سلام 18 سال گذشت از ماسه ملبورن اما هنوز این گول خداداد با استرالیا یا حال هوایی داره آره سلام سلام درست فرشی سلام می کنم به همه بخشا بهونه عزیزی که پلوتو هم نشستن سلام میکنم بکنم فرشید واسه همه ایرانیا ها مخصوصا ورزشی ها یه روز فراموش نشدنی و خاطر انگیزیه هشت خورداد 1376 هشت هنوز آدم از دیدن این گل هشت آذر از میخوام هنوز آدم از دیدن این گل با اون حالا هوای ورزشگاه ملبون سیر نمیشه آره یادش به اون روز یه بزن به رقص حسابی کردیم تو خیابونا کسی هم هیچ کاری بهمون نداشت خیلی آره یادش بخیر، یادش بخیر. یعنی نمیتونه سرم فرجید کاری داشته باشن با اون موج شادی مردم. باشه جان اجازه بده یه خاطره جالب و بامزن بشنویم از محمد خاطپور، یکی از بازیکن‌های اون موقع تیم ملی در گفتگو با سیما که در مورد سفارش ویرا سرمربی وقت تیم ملی به استاد اسدی خودمون دفاع اون موقع تیم ملی برای مراقبت از میورای ژاپنی بازیکن معروف اینجوری خاطره رو تعریف کرده. اون اگه آتون باشه ژاپن یه فروار خیلی معروف، کازیش میورا، میورا داشت. دو روز قبل از بازی که ما توی مالزی بودیم، میشون یه عکس میورا رو پیدا کرده بودن، یه عکس بزرگشو، آورد تو اتاق استاد، به استاد گفت اینو مینچس بنید بالای تخته هر موقع که بیدار میشی یه ضربه کاراته به این میزنه شما باور نمی‌کنید تا قبل از بازی این هدربرد بالای تخته استاد خورد شده بود. انگار دو زده بود به این عکس. تو استاد اصدی که کلند یادش به خیر یه جانری برای خودش به حال داشت و فکر کنم یه کتاب میشه از ماجرهاش نفشتون دوران خب این از سال روز هماسهی ملبرن دیگه چه خبر ورزشی؟ آره اون موقع فرشت هنوز تکنولوژی اینجوری وارد نشده بود تو فوتبالم آره یه خبر بود تو این یکی دو روزه در مورد حکم شلاق و تبعیم باسه یه سرشناس اولمپیکی ایران اونم به خاطر اذیت و آزار جنسی به یه دختر جوان. عجب کی هست این ورزشکار سرشناس ولیوس؟ گوت فراگ اسمش ازش نیومده، نه نا میندال، نه شیخه، نه حتی بز. اسم اختصار منتشر نشده و کاملا سریو سکرته. عجب. خدا رو شکر تجاوز به اون تو ورزشکارامون کم داشتیم که خب اینم کج شد دیگه. دیگه دیگه چی میخوان مردم دیگه؟ خیلی مشکل شد. آره ده ممنونم ده. ازت فریورز عزیز. باد خدافظی کنیم تا فردا. تا فردا خدا نجاته. I want No inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean, or devotion? با سلام 21 و یک شمب شب را ضمن ابراز خوشحالی از جمعآوری بخاری های نفتی از چهل هزار کلاس درس در سطح کشور با مروری بر سرخط مهمترین خبرقابی ساعت گذشته آغاز می نموید. معرفی فیلم کتاب و روزنامه به عنوان بستر نفوز بیگانگان از سوی نماینده رهبری در سپا و توصیه کارشناسان به ایشان که آجی شما که تا اینجا اومدی یه دستوری بده در وزرزه هم گل بگیرن کلن تعطیل بشه به پیکارش زربوشت می سعید مدنی و سعید رضوی فقیه و چند زندامی سیاسی دیگر در زندان با چاقو توسط چند زندامی دیگر و نظر ناظران ممنی بر این که وقتی بازجوهاشون متعمای سیاسی رو سر میکنن تو توالد دیگر زندانیاشون چه توقعی دارید شما؟ و حمله به سخنرانی یک شخصیت اصلاح طلب دیگر در یاسوج از سوی گروه ها و فشار و نظر فعالان ها حمله که با این وضعی در پیش پیره اعتمالا انتخابات عزیزان فشاری با موشک اصلاح طلب میزنند مهمترین اناوین خبری سابت گذشته را شامل می شدن. اینک مشروع خبرها با همکابل خوشها بلبل. با سلام، معاون غزایی دادستانی کل کشور گفت ممنون خروج بودن سعید مرتزوی از سوی مرجع غزایی رفت شده و وی این خروج نبوده است بنابرای گزارش خیر رسیده پس از انتشار این خبر گروه های مختلف مردمی در برور دادستانی کل کشور تجمع کرده از اقدام شایسته این نهاد در رفت ممنون خروجی سعید مرتزوی تقدیر و تشکر بعمل و آوردان در پایان این تجمع هزار با صدور یک بیانیه بر حق همه ایرانی‌ها برای خروج از کشور پافشاری فشاری کرده یادآور شدند اینکه مثلا چند نفر به دلیل چند پست فیسبوکی به دو ماه زندان محکوم می شوند خو خو خو چی دو ماه چی بابا با اشتباه شد اینو ماه... اینجا نوشتین آقای میکروفوندار دو, ما دو ماه کجا زندان به حساب نمیاد 20 سال بابا 20 سال, سال دروسته آره 20 سال بگو بگو سال. بله با عرض پوزر اصلاخ میکنم یادوار شدن این که مثلا چند نفر به دلیل چند پست فیسبوکی به 20 سال زندان محکوم میشوند آقای مرتضوی با درشتن پرونده کهریزک و پرونده فساد مالی سازمان تامین اجتماعی حتی مأمور خروج هم نشده است نشانه دهنده او ادالت در دستگاه قضایی کشور است و مسئولین رده ای باره کشور باید از ادالت طلبی آیت الله لاریجانی رئیس این قوه به نحوه مقتزی تقدیر و تشکر به عمل آورند پایان مشروع خود. یعنی الان شما دو نفر در لیگ برتر برنده شدید بله دیگه آجاقا واقعا افتخایی بود بله. که شما را از نزدیک ببینیم آجاقا برای منم همینطور بله. البته لیگ برتر که نبود لیگ رادیویی بله بود بله باشه دیگه خب حالا ما باید شما را تست بکنیم ببینیم در لیگ معنا ویدئ رانسات ها شما کجای دگه <صدق> <صدق> ای حالا میخواین بزarin بعدن دیگه ما چون زیاد نمیخایم جدی وقت شما رو بگیریم بلو. بلو بله بله بله هاجاق بالاخره شما با مقام بالایی که دارین درگیریتون زیاده ساکت بشید ببینم سوال اول رو میپرسم طریقه پیچیدن عمامه را توضیح دهید یا <صدق> <صدق> خدا بگو ببینم <صدق> چیز یه شال سفید یا مشکی از خواهرمون قرض میگیریم می پیچیم دور دستمون دیگه اشتباه اومد شما در بیابان بودی خواری چیزی دستت نبوده چه کار میکنه؟ خب, خب آجاق تو بیابند دیگه امما میله زن اون نمیشه که ساکت باش. پنجم تیاز معنایی منفی برای هر کدام از شما. سوال بعدی، طریق برسر گذاری امما چه کنیم؟ اگر مثل خلاصاره میذاریم دیگه؟ اشتباه هندار اشتباهه. اگر میذاریم رو زمین سرمونو میکنیم توش؟ این که دیگه خیلی اشتباه. وقعن باعث خجالت ه؟ امتیاز هم تیاز برای هر کدام. سوال بعدی، لباده لب روانی و نادید چند تا دکمه داره؟ پنج تا. دا. غلطه. چهار تا؟ بعد وقعن خجالت آ لباده اصلا مکروه که دکمه داشته باشه باز هم امتیاز منفی برای هر کدام از شما نمیدانم این اسرائیلی شما رو از کجا پیدا کرده خواج اقا من... آخر همش بله. داری راجب لباس روحانیت میپرسی شما خجالت به کشمل اون لباس روحانیت تازه پوسته خارجی وجود لایتناهی روحانیت اینقدر سخته لایه داخلیش که اصلا برای ملعنانی مثل شما قابل دسترسی نیست که رفیق من سلام سلام علیکم بله. سلام سلام چطوری فرش جان سلام ايه هاجاقه خوبی بدل. دیدین بچه ها رو شما هم بالاخره مشیت فکر کردم تو لیگ معنوی خراب کردیم خیلی بچه شد چی شد لیگ معنوی چیه لیگ معنوی نداریم ما اینجا لیگ معنوی نداره اینجا پس چی داریم اسرائیلی معنویات در رأس امور است فرش جان چی بی این لیگ نمره‌های لیگ معنوی رو اینا بشین بله. خیلی منفی بل... گرفتیم حاجی ب... دوباره بابا یه دقیقه شما تنها افتادی یا ببین چه کارهایی می‌کنی بچه‌ها شما نگران نباشید حاجی شوخی کردی شوخی کرده شوخیه. شوخی خودت کردی با فک و فاملت ما شوخی داریم اینجا با کسی اگر یک ظرف غرم سبزی در این دست ما بگذاره یک بشقااب غیم بادم جان هم در دست دیگر ما اجازه نمیدهیم این مون ها اینجا یک دقیقه نفر. ب... بله بله شما درست میفهم. شما حالا کوتا بیا حاجی جان بیا برو اتفاقا نصف المومنین شام گرفته بود بله. با بسد داش دنبالت میگشت حقیقتا میفرمایید آره بابا اما نالبال و که با تعهد کسب زمینی و مرغ فراوان سفارش داده بودیم را گرفت آره آره حاجی آره فکر کنم همون فضل. بود خودو خود برو فضل ما منتقل میشویم برای غذا دیگه بعداً برمیگردیم حساب این رو میرس آ باشه خداحافظ تفضل فضل. تفضل فضل. تفضل تفضل تفضل تفضل ببخشید این حاجی وقتای دیگه به میاد نوازش کردن تو آرزو اما مدرنیسم خانم آقایون از این جهت هم خوب بوده که یه مقدار دست و بال خانمها رو برای رفتن و گشتن و تفریح کردن باز کرده یعنی قدیما دخترها برای پر کردن اوقات فراغتشون توی خونه منجوقدوزی پولکدوزی و اینا می‌کردن یا دیگه خیلی مثلا مدرن و امروزی بودن مثلا کوبلن می‌بافتند بعد بیرون رفتن و گشتن و این چیزا کلا جز تفریحات مردونه بود و دختری رو که دختری مثلا اگه قبل از ازدواج مثلا بیرون از خونه می‌دیدین نجابتش مثلا میرفت زیر سوال. خیلی قدیم قدیما اینی که دخترها های تونتون تو خونه چیزمیز می بافتن تا یکی پیداش بیاد بگیرتشون بعد از ازدواج هم دیگه تفیادشون عوض میشد کلن اوقات فراغتشون رو با آشپزی و رفت و رو و بچه بزرگ کردن میگذروندن مدر اما باعث شد کلن بنیان اوقات فراغت زنانه زیر رو بشه اینجوری شد که دور دور بازی و اسکی و مهمونی و کافیشاپ و سینما و تئاتر و فلان اینا جای خودش رو به منجوق‌دوزی و گوبلن و اینا داد. خانم‌ها فهمیدن به جز سوزن نق و پارچ و پولک و اینا امکانات دیگه ای هم برای تفریح کردن وجود داره، خوشبختانه. البته خانم‌ها در عرصه تفریحات مجازی هم بگم خیلی مختدران وارد شدن. اگر یک زمانی مثلا برای تعریف از دختری میگفتن که مثلا روشو تا حالا آفتاب ماهتاب ندیده اون قدیمی‌ها، الان برای تعریف کردن میگن ماشالله تو اینستاگرام 20000 تا فالوور داره. یعنی که دیویس زار نفر فالوئر داشتن یعنی اونجا دارن دیویس زار نفر فالوش میکنن هر روز فیلم ها و اکسای جدیدشو لایک میزنن و این شده الان ارزش افزوده برای اون دختر یعنی اینجوریه قدیما دیویس زار نفر که سال یه نفرم این دختری رو فالو میکرد میگرفتن به زور عقدشون میکردن نجابت دختره زیر سوال نره ولی دیگه الان خوشبختانه مودرنیست اومده دیگه این مسائل حل شده است. تا من از اون سالی که موبایل خصوصا این اسمارت ها همه گیر شد کلا دیگه حوصله نشست و برخواست ندارم فقط اس یا نهایتش یک زنگ مگر اینکه مشکل بزرگی پیش اومده باشه بخوان در دل کنن حضوری یا مشورت بگیرن ازادم این شیما دوستان هم دیشب بر همین اومده بود خونه ما گویا قصد ازدواج داره ولی دوست پسره خوشگذرونه شما میترسید بعدا مشکل بشه براشون پیش گفتم مگه خوشگذرون بودن بعد با هم خوشمیگذرونین گفت نه بابا اگه بخوایم دوتایی به سبک اون خوشگذرون باشیم که به خاک سیاه میشینیم گفتم مگه سبک خوشگذرونی چطوریه گفت هر دو هفته گوشی عوض میکنه هر مدل تازه که میاد باید بخره بعدم تا چند روز کلش 24 ساعته تو موبایل تاوتوشو در بیاره گفتم مگه سر کار نمیره گفت خوب همین دیگه همین جوری میترسم به خاک سیاه بشینیم گفتم تو هم آدم پیدا کردی یا سیگاری هم هست لابد گفت سیگار الکترونیکی ولی سرگرمی و خلاف هم بود سنتیش دل نگرانی ما از آدمی است که میخواهد به چشم خود شهاده پیروزی باشد هشت سلام تماس گرفتم بگم حق با کامران بود من رفتم سرش کردم و دیدم خانم تیلور سه تا جایزه همه که هم گرفته بله. توی تلویزیون چیزی به ما نشون ندادن اینا همه زیر سر این امریکایی های که من نمیتونم چطور به خانم تیلور سیوی پشت صحنه جایزه میدم ولی به خاننده های دیگه جلوی سحنه و آقایون جلوی سحنه جایزه میدم خلیصا اینو برسی کنید بله خیلی متشکرم که رفتین تحقیق کردین تحتوشو در آوردین متوجه شدیم که کامران. درست میگه کامران هم الان سامی گرفته بودش تلفنش قط شد مشکلی نه. الان داریم داریم سعی میکنیم دوباره کامرانو بگیریم این مشکل فنیه ماست یا یعنی خیلی امان از این مشکلات فنی به خدا. کامران داره میگیره تا خب متاسفانه نتونستیم بگیریمشنی دیگه فرصت نشد که چندین بار گرفتیم حالا من مشکل فنی ما بود یا مشکل کامرام بود ولی دیگه نشد خب بچه ها سعید و مرسا دیگه این دقایق پایانی امروز البته یه بخش پیشخونم داریم که به اتفاق شما این بخش رو اجرا میکنیم ولی قبلش قبلش خدافزی کنین شما با مخاطبین و منم با شما خود من که البته هستم حالا با شما فعلا برنامه خودتون میتونه شاد باشه حتی دیدار آخر, حتی دیدار آخر. امیدواریم که دیدار آخر نباشه و امیدواریم که شنونده هم دعا بکنن فرشی تصمیم بگیری یه دفعه همه رو با هم بگیره که دیگه حالا که همه مچیم دوره هم باشین <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> خیلی حالی خدا من از خدا بوده ای میتونستم این کار بکنم من از خدا بود من منو در این, من این موقعیت سخت قرار ندین میزنم زیر گریه. <تصفح> منم خیلی ممنونم از شماتون خیلی خوب بود خیلی تجربه جالبی بود این دو روز خیلی چیزا یاد گرفتیم خیلی تیم خوبی دارید خیلی محیط کار عالی دارید یعنی همه چی به بهترین شکل ممکن برگزار شد تو این دو روز چکرین مرسی از شما شما خیلی خوب بودین خیلی ما یعنی منم کلی یعنی بر هم ما هم من هم بچه ها کلی چیز یاد گرفتیم از شما و مرسی شما که بودین یاد. و این فضا رو یه خورده متفاوت کردین این دو روز برای ما هم فضا متفاوت کردین و امیدوارم که موفق باشین و به زودی یکیتونو یا شاید هم جفتتونو حالا ببینیم چی میشه یا شکی دیدیم دو حالا ما به شنونده ها قبل از پیشخوان میگیم که اگه دیگه صدامونو نشنیدین خداحفظ حالا <تصفيق> منم گذینه دوم امیدوارم که اتفاق بیافته ولی خب منم خداحفظی میکنم مثلا مرسی مرسی گزینه دوم و گزینه دوم <تصفيق> برو بریم پیشخان تامی روزنامه، روزنامه، با قلده، روزنامه امروز، با قلده روزنامه تعادل از قول غال غالیباف شهردار تهران امروز تیت زده بود که باجگیران تهران معموران شهرداری نیستند علی، بله، ماموران شهرداری شیتیل بگیران تهران هستند. باجگیر واجی مناسبی نیست. بار منفی داره ببین. اه. روزنامه خراسان به نقل از رجب طی در مورد هدف قرار دادن هواپیمای سوفخوی روسیه تیتز زده بود که کاش این اتفاق رخ نمیداد. میگن کاشکی رو کاشتن سبز نشد همینه ها دیگه آبیه که ریخته سبویه که شکسته بیخیان رجب جان نترس نترس هم نترس امو پوتین میبخشده درست میشه بهش فکر نکن آخه دوزنامه رسالت به نقل از حجت الاسلام تائب رئیس بسیج کشور امروز تیتر زده بود که اعتماد به حجت خدا راهکار مقابله با نفوز است به این میگن استفاده ابزاری از معظمله در نقش ایزوگام آقا یعنی ببخشید حجت خدا رو پهم میکنن روی کشور دیگه خیال هم راحت میشد بابت و نفوز تمام تازنم شبمون هم به پایان رسید برنامه یک شنبه هم تموم شد یعنی اخرش سه های آخر رو میذارونیم خونه یعنی آسایش یعنی آرامش یعنی هر چی بیرون به سرت مده رو بذاری پشت و پشت درو در بیای تو یعنی عطر وجود آدمی که دوستشون داری بپیچه توی فضا خونه یعنی جایی که وقتی ازش میای دلتنگش بشه وقتی بهش برمیگردی دلش دلت براش ضعف بره فرقی هم نمیکنه خونه های شیک و مدرن امروزی یا خونه های بزرگ و تو در توی قدیمی خونه خون است چون دلت هر جا باشه خون است. تون آباد پر از نفس های گرم شبتون خوش خونه یعنی بهترین هوای این حوادی حال و روزاللی میگذره؟ اینجا مثل خونه واسه قلب من نمیشه حال من همیشه اینجا بهدره من محال دور از اینجا زندگی کنم حتق این غذا منو دیوونه میکنه مبل راحتی یا چای یا حرفای خوب این چیزا منو اسیر خونه میکنه یه خواب آروم با صدای بارون که میزنه به پنجره ای وای بچگی شوق خوب زندگی محال یادمون بره پر باید باشه که چشم راهته چون خونه تنهایی جای سرد و ساکته از خونه می نذیره فکرش از سرم نمیره من به اینجا گیره تا تو خونه ای هر طرف تو باشی به میرسم چون هر شب از مسیر تو به خونه می رسم از نیون کل دنیا سهم من شده یا رویان لحظه های با تو اینجا یعنی زندگی یه خواب آروم با صدای بارون که میزنه به پنجره هوای بچگی شوق خوب زندگی محال یادمون بره یه خواب آروم با صدای باروم که میزنه به پنجره هوای بچگی شوق خوب زندگی محال یادمون بره